افضل عمل در نزد الله رب العالمین چیست؟ جهاد افضل تر است یا یا خدمت پدر و مادر؟ افضل عمل اول ایمان هست. اما در احادیث در مورد بهتری اعمال تأابیر مختلفی آمده. در حدیث آمده که بهتری عمل است الصلاة فی وقتها والجهاد في وقت فی الله نماز در وقتش بخوان و جهاد هم تو بهتری اعماله یک حدیثی داریم که نبی مکرر اسلام فرمودن که افضل الاموال انتوت ایمان ناس بهتری عملی یک مردوم نان بده غذا بده مهمان نواز باش و سلام بده در یک حدیث داری داخل بخاری کتاب با نام ده بهتری عمل برال والدده نیکی با والده در هر حدیثی یک عمل را بهتری عمل ذکر کرده جای فرمودن که بهتری عمل در خود ده روز زلحجه در این جروع تربیر به زلحجه میرسیم بهتری عمل در ده روز زلحجه عبادت هست شب زندداری هست روز نه هیچ چیز با اونها برابر نیست شخصی فرصی یا رسول الله ولی جهاشی سبیر الله حتی جهات هم برابر نیست فرمودن حتی جهات هم برابر نیست مگر کسی که مال و جانشو بگیره بی بر جهاد کرد دوار بر نگرده اون وقت مالاتری اما بر بگرده پس در این حال این روزه های روزه روز گرفتن روزه های اول زلحجه افضلتری آمالم پس در هر چیزی گاهی غذا دادن بهتری عمل ذکر شده گاهی جهاد گاهی نماز در وقتش و گاهی نیکی کردن با والدین بهتری عمل ذکر شده پس حالا کدومی که بهترین عمل هست؟ بهترین عمل بستگی داره به دو, دو, دو جواب آسان یک به موقعیت هر عملی در محل خودش افضل هست هر عملی در محل خودش افضل هست در ماه وارک رمضان قیام اللیل ترابی کندن شب زندداری کردن شب قدر بیدار موندن تلاوت کردن در این محل این بهترین عملی از شب قدر هست و شما بگید من شب قدر میذارم فلا عمل دیگر انجام میدم این نشد کار در هنگام زیل همون آمل زیل حجی افتر پس در هر عملی در وقت خودش بهتری عمله در ایام حج حج بهترین عمله قرزو ما آمل بهتری نداریم و در ایام رمضان بیهتر عمل روزی گرفتن حالا اگر روزه نمیگیرم میرم رو جهاد میکنم اگر جهاد فرض نباشه اما اگر جهاد فرض دل این شد اونجا جهاد بیهتری عمل قرار میگیره اگر کسی یا جواب بعدی این است که پس هر عملی در وقت خودش افزتری عمل هست پس ما این مدیده داشته باشیم خیلی ها عنی سوالات خیلی ها میپرسن تشکیل بودن بهتره یا اعتکاب نشستن بهتره من میگم اعتکف بهتره اسرائیل چرا بهتره؟ دلیل تو بچه بهتره؟ ما می حالا تو داری چرا تشکیل بهتره. من که تشکیل نیستیم اما این فصل فصل اعتکافی و پیامبر در اینفض جااددمی که اتکاق مینشد هر چیزی در فصل خودش افضله اگر ما اینجوری عمل میکنی پس هیچ مشکلی در آمال ما نیست اما اگر احساسی برخورد میکنی اقا احساسی برخورد میکنند و دیگه همه چیز رو حالا دیگه اشتباه برداشت میکنند اسلام از برداشتا احساسی من کرده باید اقل روی تدبیر و اصولی در برخورد کنیم مسئله بعدی این است که جواب بعدی انسان در کدوم قسمت از ضعیف است؟ امون آمد برای او بهتر است. اگر کسی نمازش بوقت جهادم انجام میده، کار دیگر انجام میده، اما نسبت به حق والدین کتایی میکنه. نسبت به حق والدین کوتاهی میکنه. برای این شخص رایت کردن حق والدین از اون جهادش بهتره. یا این است که جهاد نفل هست جهاد نفلی هست، آمد پدر مادر پیرن. واقعی که پدر مادر پیران. در انگام جهاد نافل اینجا خدمت والدین افضل تره اما اگر ما احساسی بارخورد کنیم آج میرم جهاد میرم جهاد دشمن الله اونجا با دشمنان در نجیبه می اما اسلام میگه نه، اینجا خدمت والدین افضل تره ای شخصی یکو رسول الله، من پدر مادر پیری دارم اینجا جهاد هم احساس باشم باشو میرم جهاد حالا جهاد بیا یا پیش پدر مادر تاربودن ففیه ما فجاہید برحب منج جهاد بکن اما نامی نیست، شهرتی نیست. اونجا نام هست، شهرت هست. آقا یک سال رفته جماعت. این اشتواي، بعضی تماس میگیرم یک ما فقیری، محتاجی، هیچ چیز در داخل کرونه. آقا میره جماعت ما قرض میکنیم یکویی. میکنی، این جماعت رفته جایت میگم نه، جایز نیست. وقتی پیغمبر از جهاد داره، من میبیرو خدمت بکن، باید ما درست عمل کنیم. اگر اینجا مشکل داشت، اینو برطرف رفته مشکلات رو باید درست مدیریت کرده بعد عمل می‌کنی یا شخصی اما گفت يا رسول خود عمل بهتره چون نان مردم قضا بده همین فقر هست فاقی هست حالا این عمل بهتره نان دادن تا این مشکل برطرف بشه هر کجا مشکلی بود هر کجا ما ضعیف بودیم همون عمل برای ما احذرتر تا زوزو بر بربداری تا ایو بربداری به این صورت این میگه مدیریت در اعمال درست عمل کرد اصولی عمل کردن برادر خواهر فقیرن، برادر خواهر فقیرن، محتاجن. دامادن فغیر محتاج داماد جسی بجایی نمی لسے. اما اما ها پولها رو جاهدی داری وصرف میکنین. برای تو افضایی همینجا وصرف بکن، اما اینجا کسی هم نمیشناسی برادر تعریف هم نیست، اونجا مردن و فلان این قابل کمک کرد، اینها غلط اسلام این چیزو قبول نمیکنه. اسلام یک آمار را به صورتی که اسلام آورده هم عمل بکنید. این شان الله امیدوارم که فهمیده باشید و احساسی بازم با حرفاهمان احساسی در خود نکنید. چون فکر کنید حالا که با حرفمان احساسی در خود نکنید.